یه تذکر اید ارز میکنم. این تذکری ارج می کنم که تذکر ما را فکر کنیم لقب هایی که در حوزه داریم این لقب ها را از بین نبریم. لقب سقط الاسلام خوب کلینی سقط الاسلامه لقب حجت الاسلام قزاری نمیگن حجت الاسلام شیخ محمد طقایی هست اون هم حجت اسلام لقب آیت الله داریم که لقب خوبی جه. این علبابی که ما داریم فقیه، محقق، بجتهید اینها را استعبار کنیم از بکار بردن کرد دکتر و رو چهار رو تمام کردی خودداری کنیم این یک نوع از خود بیگانگی است یک نوع از خود بیگانگی است یعنی حوزه رو ما تر کردیم و رفتیم از اروپا این علقاب را می کریم. بعد اگر کسی در دانشگاه درس بخوانه دکتور شما که در حوزه درس می و سطح 4 را امتحان می دهید و پایا نامت مورد قبوله یه لقب مناسب برای خود انتخاب کن از این انقااب بیگانه بهتر نگیریم بیگانه نسبت به حوزه زیرا از پرد ما نسللهات فانساهم انخصص نباشیم. خود باور باشیم خود باخته نباشیم. چه گفتم حجر فهانی خود باور باشیم خود باخته نباشیم. این یک نوع است که ما از القاب دیگران استفاده کنیم همین القابی که در حوزه از اول علما به ما در اجازه ها و اجتهاد از همین ها استفاده کنیم مقام تو پایل نمیاد مقام تو بادا میرود این حوزه ما بیش از هزار سال است نتیجه بخشه این حوضه را باید به همان اناسرش استفاده کرد البته کاستی ها را هم بعد رفت کرد جای بحث نیست اما طوری ده باشد که خود باخته باشه ما خیال کنم القاب برای ما القاب چان آفرینه و السلام علیکم و رحمت الله و برکات